جز توم در جهان پناهی نیست سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست عدو چ تیغ کشد من سفر بیندازم که تیغ ما به جز از نالی و آهی نیست چه راز کوی خرابات روی برتابم که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست زمانگر بزند آتشم به خیرمن عمر بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست قلام نرگس جمعاش آن سهی سروم که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست انان کشیده رو ای پادشاف کشور بوز که نیست بر سر راهی که داد نیست چونین که از همه سودام راه میبینم به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست خزینه دل حافظ به زلف و خال مده که کارهای چونین حد هر نیست